یا الله صاحب خواهد که نظرم شده آنه شد شد شد الرحمن الرحیم و و المعصومین و ورحمنا یا ارحم الراحمین بحث در تشکیل بحث ترتیب تعرض به آیات مبارکی ای که در مجموعه روایات اهل بیت سلام الله علیهم یا مجموعه کلمات اهل سنت به اونها تمسک شده در بحث به اصطلاح مسئله غنا تا اینجا سه تا از آیات رو یکی را به سوره مبارکه لغمان بود که این آیه مکیه بود دوز آیات مکی بود و سوره نجر رو هم خوندیم که اونم دوز آیات مکی بود البته این دو تا آیه مبارکه انسان احساس میکنه که در آیه بحث حینا در مقابل قرآن قرار گرفته. اون در سوره مبارکه لغمان این طور مبنی ناسمانیشتر لحور حدیث یاد الله سبیر الله به غیره علم <تصفيق> یا تخیبه ها نسران یا رفعن هزو با فبشه به علام علی بعد و الا تطلا علیه آیاتون ها و لا مستق برن کنلم یسمه نینه از این های بوالکه این تو درمیان که کعنه و مسئلی لحوال حدیث در مقابل آیات الهی به یتخیره ها بزنیم یتخیره ها به آیات بزنیم نه به طبیل الله و در سوری نجم افبنها در حدیث تعجبون و تلحکون و لا و انتون صامدون بنابراین اینکه سامد معنای غنا باشه که حالا یا برد رو بخشن لحوله اینها یا غنا خصوص رنا که از جناب ابن عباس هم نرسوده در باقت همیت سامد معنای غنا مهمی در انتون سامدون اون جا هم افمنها در حدیث آیه مقالکه قرآن حدیث قرآن اون در مقابل غنا قرار داده شده این دو تا آیه مبارکه یک نوع مقابله ای داره که در این مقابله جنات در مقابل قرآن قرار داده شده و لذا ما دلوزعرض کردیم و در لذا توضیحیش می‌شمارند ادعیه ائمه اهل سنت در کتاب تفسیر طبری ن حرکته باعث رو که این آیه لهلال حدیث مربوط به مشکی است مربوط به مشکی نیست یعنی کسانی هستند که آیات ها دلالی قبول ندارن و از کلیم چون هر دو آیه اونگاه که در مکه نازم شدن مناسبش با همون مشرکینه با مدینه و اهل کتاب و مثلا یهود و یا مثلا فسقهی که در مدینه بودن با اینها ها نباده این دو تا آیه که حل کردم در اینجا ذکر شده این انتون سامدون در رواقه ما نیامده ما نیامده البته در مجروع باید یه سامد لحب و لعب و ها یا گفته شده جناع اما تو روایات نه از جمعه آیات دیگری ای که باز همین آیه مکیز در سوره بنی اسرائیل یا اسرائی در اون جایی که خداوند متعال به شیطان مساله به ادحفه بروی کار را بکنی وست پس منستاته از من هم به صوته تحییج رو کن, کن. به صوت خوده و بگیم در ارتکاز اون زمان این بوده که غینا سلط و شیطانه تو این, ا... این آیه مبارک هم تو روایات ما نیامده تو روایات ما لیکن از کردیم شواهدی هر در خود روایات اهل سنت ندیشن شواهدش این زیاده که در ارتکاز خودشون غینا و کانندگی اونجور خاصی که بوده اون رو سلط و شیطان و مزمار و شیطان و مزمار و شیطان میدرس. این هم به الله آی 3 اونجا مقابله نیست اونجا جبران در دو تا آیه مقابله هست یعنی جنا رو در مقابل آیات کتابی مخصوصا تو اون لهو حدیث ابن من الناس من که گفته شده کسی بوده که مثلا محمدی می خرید در مقابل اینکه مسلمان‌ها رو از قرآن جدا بکنه با جنا و با این جور مسائل آی که در بعد از روایات ماذح شده در سوره مبارکه قربان آیه به اصطلاح هفتاد دو در سوره فرقان این هم مکیه این آیه هم مکیه و سر این که اده از اهل سنت هم تمسو که با آیات نکردن چون کلیه آیات در آیات مکیه است. کلیه آیاتی که در ما غنا گفته شده جزو آیات مکیه است. این آیه مبارکه سوه هفتادو و الذین لایش هدون از اون و اذا مغروب اللغره مروب چراغ البته در کلمه زور گاهی گفته که اصلا مراد در اینجا نامی یکی از بت‌هاست حالا اون زور بوده زور بوده یکی از که در اطراف کعبه بوده زور این هم گفته شده و اذا مغروب اللغ یعنی کسانی که نمیرد در مقابل این بتویی و اذا مغروب اللغ مراد از لغ هم در اینجا اصلا حلقه که مشتکین دروبری کهبه میشستن حرف حرفای نمربوط میزدن و اضافه من رو این مؤمنی در مقابلان روز میشن من رو کرامم این توجیه هم شده و بعد از اون کلمه الهیش هدون بعضایی رو از که زاهر باشه اما خود احرستانت به باید که داره که یه رو شهادت گرفته. و شهادت زور یعنی شهادت زور لیکن احتمالاً، امکال اینکه که جمع بکنیم بین هر دو هست و در موایات ما روات خیلی سلیه نبود اما روات که رو کردن این لایشنون زور لایشنون مجلس بنا و سما زور رو از کردن در نگاه کردی تر زور معنی و کجی شامل جیبت هم میشه شامل از تورم که دروخ هم میشه شامل کارهای کشی و منحرف میشه یکیش هم تشکیر شد در روایات به غنا این هم دو, دو آیات دیگری که در اینجا به اصطلاح در مجموعا رفت شده یک آییه یه که اون در روایات ما در حقیقت اون روایتی که تو اینها سنده صحیحه که دیگه اونم دار بوده میشه سنده صحیحی در مدونه اما این دیگه سنده صحیحه وشتنه با قبول از اون آیه وشتنه با قبول از در مجموعه روایت ما به سنده صحیح وارد شده در خلاف این روایت دیگه اتا روایت لحب الحدیث میشه درستش کرد نه که میشه نمی... نمیشه درستش کرد. اما خیلی به استلاح مسلم, مسلم نیست اما اون آیه دیگری که در سوره حج وارد شده اون سوره بود آیه سی شد سوره هج در سوره مبارکه هج این آیه هم مکیه خیلی <تصفيق> از عجایب کار این آیه به اصطلاح سوره هجه یعنی الان مجموعه آیاتی یک آیه, ای آیه دیگر که طولانی مثلا مربس که در را در که خب رفتی را داره به اینجا و یک آیه دیگر خیلی طولانی است که لوشن ها هم در تخیز به لب برسند خیلی مثلا وضوح نداشته باشه اما آیاتی که میشه برین این هم میکن البته بشتنه با قول از زور این آیه مبارکه در خود اهل سنت هم قاعد داره که مرده از زور قناس اما زیاد نیستن از مجاهد مثلا از تابعی شده. بله این آیه مبارکه درباره باره حج آیاتی است که در باب حج به اصطلاح مفرد شده و کیفیت هنج و از زنده ناصد حجیعت رو گره جاهن مراکل الله من یتین الانقال از قایه و اخیلت رحمه الانعام الا مایود لا علیکم فجتن بر رس من الاخان وشتن بر قول زور هنفا الاله الله رو مشکین به و من یو آیه مبارک. این آیه مبارکه هم در سوره حج وشتنه با قول از زور بی این آیه هم شده که ظاهرا این سوره هم سوره مکیز در کیفیه همونطور و با, هم با آیات مدینه میخوره اما گفته شده که سوره حج سوره مکیست و در روایات ما که سمندش هم معتبره این تمثب شده فشتن بروی سمینار اوسان بسی احتمال هم داره جدار که مثلا در ایام مکه قیقم اکرم فرمزه باشه که این اعمال انجام بذاری چون اعمالی که در مکه مشکلی انجام بذارن حالت شرکارودی داشت این روایت آیه موارکه آقایه که اعمال هست رو به عنوان شرکارود انجام ندید این هم راجع به این آیه و از کردن وشتن به قول تر تربایات ما تفسیر شده به غنا تو روایت آمه هم داره و ظاهرا مراد از تفسیر به بیشتر جنبه تطبیقی باشه. احتمالم داره که واقعا در اونجا در مکه این رو جزء اول زور میشناختن تو آیات مکیه یک لعیار مکه چون شواهد نشون میده که مسائل غنا و لوازمی که اون داشته در مکه هم رایج بوده. پس مجموعه آیاتی که گفته شد انصاخن از همه شوکشندتر همون لحوه الحدیثه اون امتون سامدون هم اگر ثابت بشه که سامد ببنه مغرد نیست اون هم کشنگه و این دوتا آیه خیلی نزدیک همه اون وست تفسیز و نصف عطم هم به صبح تکم انصافا با مجموعه شواردی که عقاب میشوده حرف خوبیه حرف وزی نیست اما قولت زور رو بیشتر تفسیری است که اهل بی سامور هم در میان اهل سنت رواج نداره قائل کمی داره اما در روایات ما روازه صحیح داره و اصولا کمی که در بعض موارد دیگه هست در اینجاست دو تا عامل اساسی رو پیغمبر در مکه کردن یکی اوچار و پرستش اوسان و بتها یکی هم شهود زور شاهد شدن و شنیدن قول زور و مجالس غنایی که در اون زمان بود این راجع به مجموعه آیات راجع به این آیات از کردن مثلا لحور حدیث ای اعتقاد داشتن که این مرورت هست به مشرکی اصلا شامل مسلمی نمیشی حالا این مطلب رو یه مقدار توضیح بیشتری داریم این مطلب اجمالا درسته یعنی اصل این مطلب اجمالا درسته که اگر این مطلب توضیح داده بشه شاید خیلی از دوارت هم معانیش واضح و روشنتر بشه انشاءالله تا که در این مسئله هست اینه که در خود مکه را در خود مکه به خاطر نزدیکی با طائف و طائف به خاطر که منطقه بسیار تر بود و منطقه کشاورزی بود باغدایی بود انگورهای بسیار فراوان داشت الانش هم طائفه که از منطقه بسیار حاصلید کشابنز همین حاصلید در زمان ما میوه‌هایی که بسیار خوبه مثل انار و سیب و انگور و پسوز انگور و در اون زمان بیشتر میوه‌ای که از صرف میوردنشون نگهداریش آسان بود انگور بود تبدیل به کشمش می‌کردن برای اینکه نگهداریش سیب و انار این جور چیزها نگهداریش مشکل بود لذا مثلا اگر مناطق خوش آب و هوا بود مثل طائف انگور زیاد کاشته می‌شد و اگر اونقدر خوش آب و هوا نبود خرما چون رو هم خوش میکردن صلاحیت مندگاری داشت میوه های صلاحیت مندگاری نداشتن مثل فلسون سید مثلا مثل انا و نبود که این میوه ها رو نگهداری بکنن نگهداری میوه برشون مشکل بود باز سریع مصرف میشه در میوه که صلاحیت مندگاری داشت خرما بود و انگور که تبدیل به کشمش میکردن انگور نگه نگهد و در طایف هم در اون زمان به یک صورت بسیعی کشت انگور متعارف بود طاکستان های بسیار بزرگی از کردن مدرد وقتی برزر طاکستان ها شدید توضیح زنی و یکی از کارهایی که همراه اون شد تبدیل کردن او به شراب بود به لذا هم خود طایف معروف بود مثلا الله برای مثلا به استقاق اینوز مراکز شروع خموی اینها و هم شرابی که مکه می آمد از طائف بود چون طائف فاصله با مکه به استوار قدیم یک روزه نشین بود اصطلاح قدیم از کردند در زمان قدیم روز رو یعنی 45 کیلومترش میشوه اصطلاحش این بود یعنی با شتر به طور متوارق از صبح تا ظهر حدود 45 کیلومتر میرفتن 23 کیلومتر 22 نیم بود از ظهر تا شب پرسخ مجموع 45 مجمع انش 45 کیلومتر اصطلاحاً روز این بود بعدها که مصریون ها آمدند ایران رو گرفتند دو بعد خب از ایران دیگه اومد خودش خودشون خوب شد مسافت روز رو با اصل هم حساب میکنن با اصل اصطلاحاً هر سه روز شطور یک روز اصل بود اصطلاحاً یعنی مثلا شد وقتی میگفتن مثلا فلان جا تا فلان یک روز یک روز این 45 کی اصطلاح این بود 5 روز راهه 5 این اصطلاح متعارف اون زمان بود که به روز حساب میکرد پس اصطلاح روز با شطور حدود چر و با اص مثل مسافت تهران با قم سد و سی پنج مسافت سد و سی و پنج یک روز یک روز با اص یک روز با اص سه روز با شطور بود مسافت طائف رو تا مکه یک روزو نسی نمیشن هفتاد کیلومتر مثلا مساول مدینه رو تا مکه ده روز نوشتم چهار سال و الان بشم دو تا راه داری یه راه قدیمش چهار و دوزه شست رو خورد چهار سال و, و, و, و, و همینطور در سابق این مساولت رو با شده حساب میکردن مثلا مثلا سه روز پنج روز روز روحه. سه روز روحه. این اصطلاح بود استلاحه. متعارفی که در اون زمان بود الان که به مکان تا نزدیک مکه بود فاصلشی دوزه نسی بود اگر باشه طور می روزه بود و اصلاحا نسی روزه بود تقریبا چون سه روزشی به اصطلاح روز حساب می شود. و در مکه مکنمه از کردن شرابی که متعارف بود شراب تایف بود که شراب انگلی بود و از دوزه از که در مدینه به خاطر بودراه و متعارف هم نبود خورما خرما زیاد بود از خرما شراب درست می‌کردن. و لزوما اهل س... مثلا در این بحثا که با رو برام اومیدن، خیال می‌خوان تحریم خمری که در مکه شد مدینه شد، همون خمر انگوری شراب ارد. نه در مدینه پیغمبر شراب خرمایی رو نه کردن. در روایات ما داره که تمام انبیا خمر رو حرام کردن. خمر در دیگر شرایع شرایع الهییه حرام بود این مراده از قربت خرم اون شراب انگوریه و لزوم استدادی که ما سابقا عرض کردیم دو نوع شراب ما در شریعت داریم یک شرابی که فریضتون من الله و اون شراب انگوریه اون حرام که بحث ندودیم یک شرابی که حرام است به سنت رسول الله ما این توضیحات روش عرض کردیم یه چیزایی بود که خداوند متعال قرار میداد بعد هم پیغمبر دائر رو توسعه می چیزهای دیگه مثلا خداونده متعال ربا رو حرام کردن پیغمبر هم فرمونه اگه قرض بدی سود بگیری یعنی قرض بدی که توی شکلی منفردی باشی نمه رباس کل رو قرضن یه جور منفردن فحوره با این که قرض معاقیت غیر از رباس رو با بیره اما اگر شما با به سواد بیر نباشه قرض بدیم و از جنس همون هم نباشه که منفعتی رو در نظر بگیرید این رباب میشه به صورت رسول الله خود رباب به صورت ربای ترذی بوده در زمان پیغمبر اکرم و خیلی هم متارف بوده تو مدینه مکه مدینه یهودی‌ها انجام میدادن در مکه هم بعضی از مشرکین انجام میدادن میان عموی پیغمبر اکرم دوزه یکی از ربای معروف مال تدر خازن و ابن مغیره ابن مغیره رباب مثلا قرض به که با سود برگردن یعنی همچایی که تجاری حباس اونی پیغمبر هست الان که به مکان ربا به این صورت بوده بعد پیغمبر هستن ربای نقد رو هم پیغمبر حرام کرده ربای نقد این بود که بسر شما 10 کیلو برینج رو بتوشیم به 12 کیلو این استران ربای نقد این رو پیغمبر حرام کرد. وقتی ربای نقد رو پیغمبر در مکیل و موزون حرام کرد مثلا در معدود حرام نکردن پس اون, پس اون مامسا تخمه. تخمه در اون معدود بود دویست تخمه در مقال دویست گفت این حرام نیست اونی که حرامه مثلا ده کلو برمید در مقال دوازده این با اسم به حساب به این نکته هم شران اعرض یه مقدار از اختلاف حتی صحابه و کیف به بعد صحابه اختلافاتی که بین مسلمان ها اومده اگه دقت بکنید روی سنن نه روی فرایض مثلا همین روی ربای نقد و نقد کردن ولی ابن عباس ابن گفت این جایز اشکار نداره در کتب اهل سنت هم مفصل نوشتن که صحابه ربای نقد و حرام نمی‌دونستن الا ابن عباس و نوشتن که ابن عباس هم بعد برگشت شد به حرمت کرد اون نه اینکه ابن عباس ربا رو جایز می‌دونه، ما هرمنش به کتابه که بحث نشده. اون ربایی که ابن عباس حرام نمی‌دونه، ربای نقده. اون ربای نقده رو رباییه که سنه رسول الله. و ما یه توضیحات مفصلی ارائه ندیشونجاش اینجا نیست، کیفیت سنت در موارد جعل سنت شده، در واجبات در محرمات ما تو روایت خودمون هم داریم. و آسایی هم که مطلب داره که الان جا اینجا نیست مثلا در باب واجبات در روایات ما داریم سنیه ها هم دارن از عمر و از آیشه نقل کردن که نماز اول دور کردی او در سال دوم دو پیغمبر اکتر اضافه کردن تو ما هم داریم صحیح هم هست که اونی که ما فرزه الله دور کرد بوده پیغمبر در نماز مغرب و در سه تا نماز دیگه اضافه کردن مغربی کرد، در اون دو ولی ازا شده واسه شما مثلا آثارش که اگر شما در شک یک و دو در یک و دو شک بکنید نمازتون باطله یعنی مافرض الله باید صالمه بمونه در مافرض الله شک راه نداره شک در ما سنن نبی اگر شما در سه و 4 شک کردید اونجا راه داره مثلا نماز صبح راه نداره مثلا نماز مغرب هم چون یک حرکت شما سنن نبی قاعدتا باید بگین که اون مرحله سوم شک بشه اشکال نداره اما اینجا به خصوص خارج شده که در نماز مغرب هم به هر نحوی شکل بشه موجه بلاست خب من آثار داره صحبت اثر یکی منوارم ولی خب بحث خیلی سنگینی هم هست و این بحث من توضیحاتی عرض کردم در میان اهل سنت هم وجود داره این سنت نه به معنی مستحبه. سنت یعنی ما نه امام نبی که میخواد واجب باشه یا میخواد مستحب باشه یا میخواد مطلوب باشه یا میخواد حرام باشه ولذا از برن دوم در اصطلاح فقها ها این شد اینه من سابقه هم توضیح دادم عبارت بعضی عبارت هم خوندیم این شد که حتی فقه ها این اصطلاح رو به کار مثلا می شراب انگوری حرامه شراب غیر انگوری مکروهه مکروه یعنی حرامون به سنه نه مکروه اصطلاح ما آمدن بیده به اصطلاح اون که با سنه با اون که با فریضه سر گذاشتن. این اخیراً به توضیح ذهن فکرها رو که الان اخیراً ارساله مفصل زیاد اندیشه مفصلش دیگه کردیم الان اینکه رباطا اینو خوب درک بکنیم که ما یک فریزه داریم یک سنت داریم درک کردیم پس مثلا شراب انگوری این جزء فرایض بوده این که تحریمش در قران بوده و در روایات ما داره که تمام انبیا الهی شراب در اونها حرام بوده این شراب انگوریه این شراب تو مکه در مدینه به خاطر در آخبات هایش اینکه باید بعضیشون و مثلا وضع خاصی نفید هاشون بود شرابشون شراب, شراب خرمایی بود از کردن طور وقت ما هم داره حتی طور وقت سنت دقیقاً بیان شده که وقتی پیمن بر دست داد شراب های رو بریدن و همه به اصطلاح ما ایرانی ها بود توی خیک به اصطلاح شراب نگرم از پوست بزرگی آ بوسن ها رو پاره کردن شراب هاشن س به اصلیت گ اصلی که است می داره که تمام اون فیک هایی که توش ضرد هایی که تو شراب بود هرش اون شرابش انگوری خرمایی بود یک یک خیک که نصفش خرمایی بود ش انگوری یعنی حتی دقیاً مقدار حجم اون شراب هایریش شده تمیر شده. که تمام اینها شبابه خورمایی بود مخیل اختلافی که بعدها هم پین مسلمان ها پیدا شد تو همین سنت نبیه ببینیم این الله هر رمان خمره من الاند و هر رمان رسول الله کل مسکر یک تحریم الهی بود یک تحریم نبوی بود اون تحریم نبوی کل مسکر بود بلذا از پیغم برکم سنیان نهب تنه که کل مسکر حرام هر مسکری حرام اختلافی در سر مسکر پیدا شد دردها حالا دو تا نقطه او دهی نقطه جوان هم اعرض میکنم اختلافی که سر مسکر پیدا شد ابو هنیقه و ادهی که در کوفه بودن مثل خودشون قاید شدن مراد از مسکر یعنی اون مقداری که مست میکنه مثلا شما از شراب خرمایی یا هم خب به خاطر ارتباطاتی که با دنیا پیدا کردن شراب فرس کن مثلا زرن شراب برنج که مرزون بکتن شراب مثلا جو شراب های دیگری هم پیدا شد خب شراب های صنعتی هست مثلا مواد اولیش مواد سنعتی شرابها شراب ها و اقسان مختلف اما همه که میگفت که اون شراب انگوری مطلقا حرامه ولو یه آشوم ولو یه اما شراب غیر انگوری به مقدار اسکارش حرامه بسید یعنی کسی ستا پیاله می خود مست نمیشه تو اون پیاله چهارون که مستش می کنه حرامه این کلومسکره حرام مراد اون مرحله است که مست میکنه. و لذا تو رواییات ما آهده ما اسکره کسی و فقلیره و حرام این وده اون قبلانست این از رسول الله هم نمیده. ما اسکره کسی و فقلیره و فقلیره حرام سنوی هم دارن اتون هم تو سنده می ما هم داری پس دو تصور درباره این سنت پیغمبر شد اون سنت پیغمبر کل موسکرن حرام به قیلت شراب انگوری هم تمام موسکرها حرامه هست ولو انگوری نباشه. این حرام به سنت شد اسم شد حرام به سنت رسول الله اون وقت تنس کردم در حرام به سنت اختلاف پیدا شد از به اصطلاح، از کوفی کوفیان حرف کردن که نبی رو جایز می‌دونن و می‌خوردن اضافه حتی شويه وقتی هم عرض کردم ایده از که سعی کردن امثال هارونش دفاع بکن اینکه این که میان هارون شراب می‌خوردن شراب نمی‌خورد نبی می‌خورد فتوای علمای کوفه چون در فتوای علمای مدینه نجیب هم نسخه شراب انگوری بود اونم حرام بود و لذا مشهور بود که فتوای علمای کوفه در محیط کوفه شراب رو مرادشون از این شراب، شراب غیره انگوری بود شراب غیر انگوری تا حد اسکار حرام می دونستن. تا قبل از اسکار حرام نیدونستن مثل نشه اون را حرام نیدونستن و در روایات ما آمده که هیچ فرق نمی کنه. اگر کس به حد اسکارش به پنج فیاله از مثلا یک قسمش هم حرامه ما اسکر کسی رو فلقه من منخوا حرامه بایشن شده معلم ظاهرا شبیه این قضیه روی جنا هم واقع شده اون مشکل اساسی ایده این یه تحلیلی که چون در عبارت نموده ما این تحلیل شراب رو از کردیم این تحلیل روی جنا هم بوده یعنی به این معنا یک جنایی در مکه بوده که طبق این آیات کاملا واضح بوده اون حرام این غینا در مدینه شکلش عوض شده اولا در مکه این به اصطلاح این غینا بیشتر روی مغنیه ها و زن ها بوده در صدادی که غینایی که در مدینه بوده روی به اصطلاح اصلا مرد بودن مردهای محروفی بودن بعضیشون در غینا حالات عجیبی داشتن مردان اصلا مثل یک جلسه تشکیب میدنم مردم جمع میشنم که غینای اینا رو بوش بودن اما در مکه اصولا در مکه و در خود طائف به خاطر ترویژه و رواج شراب نستی وبلدان اون عمل شنی اززنا هم شیاه داشته. اصلا به را میمثل اوگ شهرهای خاصه برای این کارا طائف اصولا میزه اساسیش این بوده که محل به نسبت خمور و فوجور بوده. وقتی در سال هفتم از صائف آمند که مسلمان بشن اون رئیسشون آمد به پیغمبر اکرم گفت که ما مسلمان میشیم اما سه تا چیزی رو ما نمیتونیم انجام بدیم یکی نماز, نماز نمیتونیم بخونیم یکی اینکه شراب و فحشا رو نمیتونیم بداریم چون اقتصاد طائف رو این دو تا این شرابیه که اون ما اگر اینو بداریم خب باعث طائف هم میذاره شما این دو مطلب رو از ما نخواهید یکی خمور و یکی فحش این اصلا متعارفه طائف بوده همین بس زیاد که گردشنده باشین به بچه ثمیه چهار نفر از بزرگان قریش به اصطلاح باوت نوشتن در سال از این اعمال زشتی که معروف بود. و لذا خود ثمیه زیاد و ملحق به یکی کرد. توی صحیفه نوشتن که نمیخواد ما از تاریخی رو بخونیم. که بعدا معاویه گفت نه این زیاد برادر منه پسر ابو سفیانه. که بقیه تاریخ سازه معاویه دارن. این جزء امور متعارضه. شبیه این هم به خاطر قربه با طائف توی مکه بود و اصولا از کردیم یکی از جهاتی که در مکه از برده ها و کنیزها ها و زنها استفاده می همین مسئله یه بود که این اصلا آی قرآن همون دارا که او فتایات کم علال ان این عرب نتحسنن این فتایات در اینجا به معنای کنیزه کانه کنیزه های خودتون به فحشا مجبور نکنی اگر خودش در البته این در اینجا اصلا مفهوم نداره حالا واژه بحثش نمی‌شیم گرazem به هر حال این یکی از حب یکی از منابع در آمد افراد در مدینه در مکه استفاده از کلی برای فرشا بود ولذا در خود مکه و در طائف عده‌ای از افرادی که به قول موسیا پولتاو شبیه دارد این کاورای قرار تشویذند آنکه اون به این معنا، خانه خانه‌ای رو می‌گرفتند حتی اون پرچم می‌زدند. که در این خانه‌ها یکی فحشاب بود، یکی شراب بود، یکی هم موسیقی و ما رو زدن و رقصیدن اینها بود. یعنی یک مجموعه ابومه بود که چون این همچنان یه از بعضی‌ها رو می‌گفه گویی زват و رایات، از دی از کنیزکان گفته زват و رایات بودن. حالا مثلاً تو از خصوصاتون رایات هم نیستن که. در بحثش این حالت خاصی بود و این تصور بکنید در محیط مکه این جور به اصطلاح مطالبی باهنا آمیخته بود هم فجور بود هم خمور بود و هم غنا بود و کسانی که میخواستند مثل نظر نهارس که نشدند در مقابل رسول الله (ص) و من الناس منی اشری بهل حدیث لیذلع از حبیب الله این جور برآکژ رو که اصطلاحاً حالا ما مثلا ما در مثل زبانمون میگیم کاوار مثلا این یه مجموعه ای بود با هم بود این مجموعه کار این زنگ رخ... رخم توش بود قد غنا نبود رخم بود حضور بود،, بود خمور بود این مجموعه در جاهای مهیلی بود حتی هرچند خوش بود علامت روش بود مثل اینکه یه سافتوار میگن مثلا کاوار فلان مثلا عنوان رسمی داشت فقط میگن اونی چه که در مکه بود این بود از این هم از این مجموعه استفاده می در مقابل تیخن برد افمنها بر حدیث تحجیبون و تلحکون و لا تبکون و انتون سامدون یعنی با این اینجون مراکز در مقابل رسول الله می رید و من ناسمان یک سری لحول حدیث این لحول حدیث در زمینه مکه با رقصم همراه بود با فجولم همراه بود با خومرم همراه بود جاهای معینی هم بود اون چی که در مدینه اتفاق افتاد اولا خب در مدینه خود اوس و خزرج دنبال اینا نبودن یهود هم دنبال اینا حرفا نبودن چون یهود در مدینه سیترین نهایی با یهود بود یعنی خودزه بالایی داشتن ما و رایات اصلا تو مدینه نداریم اصلا تو مدینه زواسل رایات نداریم دقت می‌کنی در مدینه این که مثلا کنیز باشه و باش رست باشه و باش حجور باشه و باش خمور باشه این اصلا نبود تو مدینه اما همون نقطه فنده شوید در مدینه اون چه که و بعد از کردن سابقا نبود مدینه مرکز این شد اسمش فقط قنا بود مرد بود فقط میخوند از تو خب که مخون بعضیش ممکن بوده عاشقانه باشه بعضی شعره به حسا عادی باشه حتی شعرهایی مثلا ممکن همون مثلا کاروان و ساروگان شطور رفتی اونجا و چی شعرهایی اونجا بود و با آواز میخوندن و لذا در خیلی از تعبیرات تاریفی نمیگفتن قناع دوستن سما حتی ممیگفتن تحبیر اهل سما سما به به این معنی بود که میرفتن اونجا در این هم دلال جبر که اسمیشون رو در بعضی عباد کان صاحب لحوین و سما اصلی مجالس اینا ولزا اون چیزی که در مدینه اتفاق اون چیزی که در مدینه بود خیلی از اون چیزی بودی در مکه بود اون چیزی که در مکه بود یه حالت مجموعه بود فرض مثل این که یه خواننده ای فی کاوره اون خواننده به فی خودی عادی بخونه این فرقی این دو تا از زمین تا آسمون بود این صحبتی که شده مثلا ابن حنبل ابن حرز میگه آیه مبارک لحب حدیث نه به لحاظ لحب حدیث لیوظه لعن خبیل الله و یتخیل ها حضوها اون لحول حدیث اون خانندگی که توش اتخاذ آیات و باشه مسخره به قرآن باشه نه مطلق لحب الحدیث قسم کنیم یعنی مخواهد این آیه شعن و دویشی بوده یا نقل کردیم از منزد اهل سنت که این مال مشکی نسته این آیه مبارکه ناظر به استفاده مشکلی درختی مسلمان ها داره صحابه که مثل عبدالله بن مسعود این عبارتو خوندیم از که مال عبدالله بن مسعود سی عبدالله بن مسعود در مکه مسلمان شده جزء کسانی زی در مکه مسلمان از اول با رسول الله صحابه مثل عبدالله بن مسعود وقتی این آیه رو خوندن و بدن ناشریش در لهل حدیث گفتن والله هو بر جنای این زمین رو هو بر میگیره به لهل حدیث الگنا هم برای عهد خارجیه یعنی قسم میخورد به خدا که اون لحب الحدیثی که در مکه بود همین این قنا نیست کنان تو مدینه بقید کنیم والله خوب درست درسته لحب الحدیث در مکه یک اتخاب آیات و زوان بود لیوز الله بود اینا توش هست قبوله فجور توش بود خمور بود زباس و رایات بود لیکن اینا مخواستم بگم در آیه مبارکه اون عنوانی که روش رفت نرفت رقص نرفت خمر نرفت فجور، اون عنوانی که رفت دهبال حدیث رفت بوده از اون روشن شد نکته از اون مجموعهی که بود از اون مجموعهی که بود آیه مبارکه یکی روشن بارد گرفت یک عنوانش رو رقصش رو نگرفت کمورش نگرفت از اون مجموعه که بود این نبود که چون کابارن از اون مجموعه این نکته رو که لحوال حدیثشه گرفت پس می فهمون نکته اساسی در هرمت اونا هم حرام هستی کنم نکتش اینه و لذا خوب دقت اگه این مطلب روشن شد و یک مطلب یارم بخاری وجود دیگرا مودن اصلا بخاری ورده اینا از پیغمبر یکی از ساده شامیه اینا از پیغمبر نرمی کرده یک مطلبی رو بخاری هم آورده که مطلبی یکی از چیزهایی که از پیغمبر نرم کرده که بر ایجاد یکی از مسائل لباب جنا هم مربوط بود این بود پیغمبر اکرم فرمودن که بعد ازنا شهر که اقوام منبعی از امور رو حلال میکنن اینا حرامن اسمش رو حلال میکنن یه باقایی داره اون امور من توضیح خارجیش ارجو کردم چون چند تا دلیل دارم پس معلوم شد اونایی که از صحابه مخالفت بودن میگه آیه این, مرده. این آواز میخونه اون چیزایی که شما تو بک بودین همراهش این حرام این چه نکته ای داره مثلا سری که بین صحابه اختلاف شد و حتی بعد بحث شد که آیا همین در تحریم کرد یا نه این بود سر اساسیش این بود اینا بگفتن مثلا این که آیشه میگه جاییتان سغنیان ولی ستابه مغنیتی یعنی این یعنی فقط میخوندن اینا مغنیه نبودن اون صفتی که در مکی بود اون صفت اینجا نیست اون صفتی که در مکه بود و بس حالا برگر برمیتوزین در مجموعه این روایتی که آمده شیخا ایده از اشیاء و حلال میکنن که بخاری هم آورده مجموع شاهد هست. حالا اینا توضیح بدم و کیفیت تحلیلش کنم یکی خزه برای من نسخه خزه باشه یا حریره چون پیغمبر اکرم حریره حریر ای بود که از ادیشم تار و پودش از ادیشم خب خیلی لطیف بود پارچه لذیذ بوده. پیغمبر اکرم فهمید نری مغها حرامو در این زنها جایشه پیغمبران ایده میان بعدها. یه چیزی شبیه حریف می پوشن اسمشو عوض می مراد این حدیث مبارده که در بعض از خود در هست خذ خذ خز اسم حیوانیه خذ و سنجا و قاقه یا خب می روید در قربیان مثلا اصلا از این کلاه یا مثلا کستیناه مخصوصی از دوم روباحتی خیلی لطیفه اینا حیواناتی بوده که در جلده خیلی عرم نبوده بعدها خذ خذ خی پوسته لطیف می داشته یعنی وقتی انسان پیراهن حضر می پوشیده یا جبه می شد مثل قبای ما خیلی لطیف بوده. انسان دست می مثل حریده. ببینیم یا سهلون حرید به غیبه این حولی که در کتاب بخواهی. در کتاب بخواهی زربابه هشرانه این رو برده رونازه هشرانه. چون توی شما ببینی که از هشرانه این شخص شامی نهار که من از پیغن برش که بعد از این اقوام میخواند خواهند که عبده از محرمات رو که حرام من حرام کردن اسمش رو عوض می کنن در درماغه حرام این حدیث خریدی که بخواهی داره که تبسته کرد میشه در بابا جناب این حدیث بست داره البته از اجایب اینه که فتح الباری قبلا نشتو که ما این حدیث شهر مقصد شهر نمیده اینجا داره پس یک حریمه خود اهل سنت حالا تعلیقاتش هست خود اهل سنت بی این قصاشا عمل نکردن خیلی این قسمت رو چون گفتم خذ غیر از حریمه خذ ما میوانه تو سلطه می‌ذاره این قابل اشتباه و حریمه نیست حریه پاچه باثری نیست اینکه پاچه نیست از اونرا نام کردن که مشهور صحابه خذ می پوشیدن من حالا بحث خذ میشم چون این بس طول واسه اون صدیر در اینا مشغول صحابه خلز رو پس یک خلز دو خمره الان من توضیح خمر رو حل مراد از خمر در اینجا همون نبیزه که احل کفر می حتی در مدینه هم بعضی هم می گفتن بیرده خلز رو من گفتم خمر حرامه میان بعد از این خمر رو میخوان خوان اسمش عرض می اون خبری که اسمش عوض کردن در این آیه الی دوباره اون عبارت از نجیب یعنی بعد از این میان این کار رو انجام میدن لا که اسمش عوض میکنن به جای هر چی میان آیه آی نجیب میزه که از چون اذه از, از مواد غیر از انگور حالت تخمیری و حالت تولید الکل داره ها درجهش پایینه و این کار خاصی از اون ماده الکلی میگیرن خب اینا قدیما بوده پادو پیشه ای می زمانه ما زمانه به نحوی اون زمان قدیما به نحوی دیگه اینا حکی از اشارهاتی بیمه تعلق تاریخی مثلا از سی می گرفتن از برنج می گرفتن از ذرت می گرفتن وا اینکه تخمیرین ها حتی برنامه تخمیر گندم نیست چه برسه به تخمیر گندم بهسا انگور اینها شراب غیر انگوری درست کردن دیگه ایام خمره اون چارطه‌ای که گفته شده یکیشم خمره البته خمر رو بیشتر که در دنیای اسلام باشد مثال دادم میتونه کوفه، اهل کوفه خان رو بکنن. اون نبی است. چیزی در معازف معازف، یعنی ای که در آمده است خنوار، آمده، مأزف یعنی اون علازن نوازنده بود. میگه پیغمبر برکت این دکتر کسی که چه سعی کردیم. میتونم پیروان برکت گفت که بعدی هم میاد میگن اون جنایی که در مکه بوده این در مدنی نیست، پس خنوار انجام دادن اسمش عوض کرده. اسمش سما آگودش میاد تو خود نسخه یکی از اجایب کارینه همین رواده با, سن، با همین سند ابو داوود داره معاذه به چه امداخته تو بخواهی معاذه هست پیرمه اگر میفهمن چینا میان اسماش عوض میکنن همون حرام انجام میدن همون موزیری که در مکه حرام بود همون غناه که در مکه حرام بود اینا میان اسمش عوض میکنن اون وقت متهم این قصده کی بود اهل مدینه بودن روشن شد یکی دیگه شمه نساه زنه به اسلام. متهمه به این قصه در اون زمان به اصطلاف خودشون چون چی بودن؟ اهل مکه بودن چون ارز کردم در مکه در اواخه قرن اول و اواخه قرن دوم مطعه رایش بوده به این اهل سنتشو نشیده و لذا اون هر یک افاره که من نور کردم از کتاب علا مال خلال که از علمای خنابل هست. نالکده لوا آخره احمدو به قول اهل و به قول اهل في و به قول اهل في الاسلام یعنی <تصفیح> این سه شب این ستا حرام رو برداشتن با تغییرات حلالش کردن روشن شد ماله همیشه دوستش دیم هدیهی دارند دارند نوشته اون که زمانی که این حدیثه پرس کردن نظرشون به این بود اون زمان هم و کیفیت به تغییرن اینجوری بود می گفتن مثلا ما آزب و موسیهی که در مکه بود به اسم سماه تو مدینه بودش دادن شرابی که پیغمبر فرمونه حرامه به اسم نبی خلابش کردن اون زنای از به پیغمبر گفتد حرامه به اسم متعه اهل مکه هست بدم ابن جریش که اهل مکه هست در معروف مکه مجره که زمان اعام ساده هم ستاد و فتریستانش و زمان امام باغ هم مشرده ایشون اصلا هم به بود و از توقدر گفتن هفتاد مثلا ز مه گرفته بود. اما که به ها اینا اصطلاحشون این بوده که اهل مکه و نظام بود دقت بکنیم معامیوارد ماشا تو تو روبیچک میشه. و در یک که ما هم, هم داریم اهل در در قبل از دامن اونجا دیگه ایلا زهرت زنا دیگه میگی در فیما برد این مثلا زمان پیغمبر سیعتی اربان بعد زیر اما تردیجا جامعه بشه بیرونی میشه که دیگه نه خود زنا علمید خود خمر علمید بخص نیست که شراب رو به سو بخوره این رو جد رو اشراس و سائه گرفته وقتی که دیگه این محرمات رو علم انجام میدن زنا علمیت خمور علمیت و تمام محرماتی که گفته شده علمیت پس بنابراین اون نکته رو که عرض کردم این بود نکته این بود که آیا زنا و سمایی که در مدینه بود آیا این به سنت حرامه مثل غنایی که در مکه بود که به آیات بود اینجا بود که از ایدیه نه نعر میکنه بله پیغمبر فرموده ایده هم گذشته پیغمبر نفرمده مسلمان صحابین استظهار کردن <تصفيق> الان سمتم ان شاء الله دفترون شد ایده دیگه روابط رو بنا میکنیم ان شاء الله به نظر من دیگه الان موهیت مساله دستتون اومد و سر اختلاف و ان شاء الله اهل بیت در اون خطی بود که این حرامه چون دو خط در تمام اخریبه با مجموعه روایاته گفت نغینم خب نیست محمود جنای مکر همون جنای مکه اهل حدیث ماکیا شامل این میشه سلام خب به ما اشتباهه اونا اشکار دیگه به... به... به اونا اشکار دیگه <تصفح> ما میگیم متعه بقی من هر واسه ها توزیحی دارم متعه ما یک احتمالی بنام سه از جویش نقل نشده احتمالی ما دادیم که شاید متعه که یه هر واسه